شما در رادیو عربی چه کاری انجام می دهید؟ من اخبار و گزارش ها را ترجمه می کنم در ضمن گوینده خبر هم هستم رادیوهای های برون مرزی چه برنامه هایی برای شنوندگان تولید و پخش می کنند؟ صدای جمهوری اسلامی برنامه های مختلفی تولید می کند مثل خبر، نگاهی به مطبوعات، آشنایی با اسلام، مسائل روز جهان، ایران شناسی پس برنامه های متنوعی دارید؟ بله، رادیو شنوندگان مختلفی دارد پس باید برنامه های متنوعی داشته باشد راستی، رادیو های برون مرزی چه تعداد شنونده دارند؟ این رادیوها در سراسر جهان شنونده دارند شنوندگان از طریق نامه تلفن و ایمیل با برنامهها در تماس هستند پس شما نظر شنوندگان را در مورد برنامهها میدانید درست است بله ما با توجه به علایق شنوندگان برنامه هایی را برای آنها پخش میکنیم من تا امروز رادیوهای برو مرزی ایران را گوش نکردم من به شما شماره فرکانس رادیو عربی را میدهم لطف میکنید